امروز در دنیا دشمنانی به صورت علنی با اسلام مقابله میکنند مقابله اونا در درجه اول با ایجاد اختلاف است عمیقترین اختلاف ها و خطرناکترین اختلاف ها اختلاف اقیدتی و ایمانی است تحریکات ایمانی و عقیدتی برای به جان هم انداختن مسلمانان امروز در دنیا به وسیله دست های استکباری انجام می‌گیرد. یه اده رو تکفیر می کنن ادده علیه ادده دیگری شمشیر می کشن. برادران به جای همکاری با یک دیگر و گذاشتن دست در دست یک دیگر دست در دست دشمنان می‌گذارند علیه برادران جنگ شیعه و سنی به راه می‌اندازند تحریکات قومی و طائفی رو لحظه به لحظه افزایش میدن. و دستهایی که این کار رو میکنن دستگاه دستهای شناخته شده ای هستند اگر نیروی خرد، چراغ اندیشه و آگاهی که قرآن ما رو به اون امر کرده است به کار بیوفتد خب دست دشمن رو میبینیم انگیزه دشمن رو میفهمیم امروز در دنیای اسلام دستگاه‌های استکباری برای اینکه به های استکباری خودشون برسن برای اینکه مشکلات خودشون رو پوشیده و مخفی نگه دارند در میان مسلمانان اختلاف ایجاد میکنن شیعه‌هراسی به وجود میارن ایران حراسی به وجود میارند برای اینکه رژیم غاسب صهیونیستی رو محفوظ نگه دارن برای اینکه که تضادهایی که سیاستهای استکباری رو در این منطقه به شکست کشنده است این تضادها رو به نهوی حل کنند راهش رو این میبینند که بین مسلمان ها اختلاف بیندازن خب این را باید دید، این را باید فهمید، انتظار از زبدگان اینه، انتظار از نخبگان اینه